اول بداندی که برنی اسرائیل از زمانی که متولد شده اند همیشه برای باقا خودشان وابسته حکام بودن برای اینکه که ارها زندوانه باید به حکام متوسطیل می شدن امروز این باقبخت یهودی ها امروز برای اینکه که زندوانه وابسته امریکا هستم با اون رشو می دن پول می تا کنه هر حمایت می کنی تا آمن دجال هم وابسته دجال بکنه. شدنی کنه از همون اول هم وابسو کم بوده در بیبن اسرائیل وقتی که بخت آمد حمله کرد از او کل نیکان سالحان رو کشت اینها از بیر رفته و تارات این از بین برد هیچ آلمی رو نگذاشت قلوان از بین برده خانومی حامله بود خانومی حامله بود و این خانم از همون افرادی بود که مذهبی بچه کہ متولد شود بچه جو شو تورات تعلیم دار جو تورات تعلیم تا تورات تو خوب یاد بگیره و کار بکنه تورات تو یاد گرفت یاد گرفت حالا خانکان دوباره به اسرائیلی ها دیگه روشت کرده قبل از این قبل از این بنی اسرائیل در رشته میدند از یک رشته اونها انبیا نیامودن ان کل انبیا در یک سلسله نسب بودن عالم روز دارین در یک نسب کل انبیا می حضرت بنیامین حضرت یوسف بنیامین کل انبیا می در 10 بعدی هی پادشاهی می اومادم هر پادشاه حاکم از ان وزن از این می حالا میگه حاکم هست حاکم از این نسب می اومادن از اونها و با هوکا همین چه دیگه تو از از یوسف بنیامین اینا حالا اینجا آماده کم کم کم کم فاسرها گرفته شد و حکم اندیار حمایت میکردند و این چه دینی لایح تبلیغ میکردم باستیه همدیگه دیگر بقا داشت تا این اتفاق افتاد این هارو کشت وقتی این هارو کشت بعض کشتر این دیگه همه این هار از بین برد تا این تفر بزرگ شد و ادش تار تالین داد تا بستنی بلوغت نبود کردنی خداوند مطال اینو پیگم بریم و همین جوان را پس پر انبیایی معرض شد حالا کاملا دوباره به نسلایه زنده شد. دوباره شکل گرفتند. وقتی شکل گرفتند گفتند که برای ما یک پادشاه را معرفی کن. این پادشاه معرفی کن تا بتوان با پشتوان همون پادشاه جنگ میکنیم. ما حاکم نداری نداریم، بازدارده نداری کسی که نمی‌مسئول باشه ما نداریم. لذا کسی را معرفی کن تا با پشتوان همون به توانی بجنگیم و حق خود را بگیریم. دوباره. هر اینجا من حلقی پادشاہ خداوند متعال به پیغمبر گفته بود که گلو هر کسی که داخل خونه تو آمد حالا چند دوایت داریم ایک از روح این از که وقتی که آمد و یه دیگه اونجا بود این مشکه روغن وقت این روغن بیرون کر که وار کر همون کسی که می پادشاہش ما یا کسی که آمد این چوبش بده تالوت اصلش موجه گشپان شطرش گم شد گمشو داشت میگش میگش دنبال شطر حیواناش میگش غلامش باش بود باب به غلامش گفت که اینجا خونه و پیغمبر است. بری پیش همین پیغمبر که برای طلب دعای میکنیم ملاقاتی بری طلب دعای میکنیم فران که مشکل حل میشه گفت بری که نشست موده همون ذرقی همون مشکل ذر روگاناش برو اومده فران اینجا روگانا به روستانش تو حاکم هست تو پادشاه هستی حالا تعالوز شو پادشاه پادشاه که شود حالا جالب این بود که تالوت نا از نسل پیغمبر انبیا بود و نه از نسل حقام بود از هر اطانه بود حالا اثرات کردن مردم گفت حبا این که نا ما این قبول داری نا از نسل ما هست نا از نسل هست این که نمیشه خدا وانده مطال داخل قرآن فرمودن که باسطن که والجیس آن چیزی برای یک پادشاه نیاز هست و چیز یک قدرت و دو علم دو قدرت وانعی که حکم لایر را نافرذب داشته باشه و دو چیزی داشته باشه باید اون علم داشته باشه. علم صفت ذاتی هست، پول سروت نیست، پول سرای انسانها گرفتی میشه، اما علم صفت ذاتی هست گرفتن میشه. انسان بیکشان این میگرفتن میشه. که این هار داره برای حکومت این ضروریه. در این تالو هم قدرت هست. و هم علم هست و این نیتونی کارا انجام بده جالوت عمر جالوت عمر دوش برای درگیری آماده شد با تعلید دو هر کسی که جالوت و کشت من اورو دامال خودم میکنم تعلید حتی جالوت و کشت من اور رو دامال و دختر به او میدهم. داود علیه سلات و جوانی بود اونجا بادسانگی آمد و تو غرامی یکی وقت داود و جالوت ها داود آمد جالوت و کشت وقتی گفتن، تالوت و جالوب با همه ذاکره کردن گفتن چرا کش اینجای صادیان اینها رو به کشتر میدیم حالا بیاد دو نفری بی جنگیم اگر منو تو با هم کشت شدیم بعد که هر کسی از اینها کشته شد گروبه ما میشه و حکم ما لحمون چه انسان ها خون شو بریزیم اونها کم اغل داشتن این روزه حکام ما اغل هم نظارن در همه انسان ها رو میخور بخاطر بعد ایسان درسته بعد تعلوت هم گفتم میره گفت گفتم میرم وقتی رفتم اونجا داوود جوانی بود جالوت گفت که پسر تو بر تو جوانی من نمیخوام تو را بکشم هنوز خیلی جوانی بعد تو داخل زندگی تو بکن سفر زندگی تو بکن گفت اما من نمیخوام تو بکشم اون استوانی شد سنگی کرد آغاز میفرم استر جالوت افتاد و جالوت مورده جالوت کی مورده اینجا داوود محبوب شد و حالی گفتم داوود حالی پیش داوود آمده، خود تالوت که دختر بشگاه آدم داماد شد این داماد که و مردم به طرف داود مراجع کردن گفتن داود داود, داود دیگه تالوت کم کم دیگه مندوی شد محبت بایرون باد تالوت دشمن داود شد خود حمید پدر خانم اینجا دشمن شد دنبال کشتان شد همیشه بیخص او رو بکشه اما حضرت داوود وقتی اصابانی می شد این قادر تون می دوید که که نمی ترس بگیره. بی و حتی و دین میکرد تا می اونو بکشه و بی فرار میکرد نمیشد تو یک روزی یک روز حضرت داود اصطاد کرد که در خانم میکرد بنا بکشه در رخت خواب خودش رخت خواب خودش گذاشت زیر رخت خوابش بازی نیه مشکی گذاشت و بالا چابیل انداخت را بیرون گل اگر که بیاد انجا بکشه بدون من نیست که میجا همین کارو کار تعلود داخل اما تعلود وقت موقع وقتی ز نا راحت شد که پس متوجه شد که داوود از نخستوا متوجه شده کمی می‌häست فاست شد. وقت هست شد. هر کسی ام ها مخالفت می‌کاره، تو چرا داوود می‌زنی آل از یاز می‌کنی و نهار می‌کش؟ خیلی از این فانار کش به تالوت. تالوت یک خاویدو بود. تالوت خاویدو بود. حضرت داوود علیه سلطه‌هایش همچین پرندن نبود. اما، اما چند تا تیرگیر، یک با لفنش گذار، یک استنتراع گذار، یک استدتشار گذار گذارش تو رفت. گزارش راست تعالی از شو شد رو دید گفت نگاه کن داوود توانست بند کش اما مرا نکشت دوباره جی توبه کرد و فاده شاهی رو تحویل حضرت داوود داد و الله رب بولادی پیغمبری می‌گوید که هم پادشاه و هم پیغمبر، حضرت داوود شد، بعد پسری حضرت سلیمان شد، بعد از اون تعلق با بچه هاش بعد میگه هشت تا، بعضی هجده تا، بعضی دیگر داشت تعلق، باتش شدگرفت، رف در جهاد، جهاد میکرد، این در جهاد دیگه همونجا کشته شد بر نگشت نیست، آخری تو کرد جوری از دنیا رفت.